بسم الله الرحمن الرحيم فبشر العباد الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دوستان عزيز في برنامج هجرهم از سلسله درس های عقیده در قرآن و سنت در خدمت شما دوستان عزیز قرار داریم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله و صلوات و سلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم عنوان این درس ما اقسام توحید الوهیت است دوستان عزیز اگر شما با ما بودین و در درس قبلی ما و شما خواندیم که توحید اصلا توحید سه بخش تقسیم میشد که یکی توحید ربوبیت بود که توحید افعال الله جل جلاله بود خالقنده هست روزی دهنده هست شفا دهنده هست توحید افعال یا ربوبیت قسم دومش توحید اولش ربوبیت بود قسم دومش توحید الوهیت بود و قسم سومش توحید اسماء و صفات انال امی قسم دوم که توحید الوهیت است یا توحید عبادت و طاعت است این توحید باز علما به سه بخش اساسی تقسیم کردن که به می سه بخش قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم اقسام توحید به سه بخش اساسی اقسام توحید باز هم به سه بخش اساسی دیگه تقسیم کردند که حال ما شما امی سه بخش عزیرا میخوانیم خب این که چرا به سه بخش تقسیم شده اولی را بفهمیم که چرا مثلا توحید الوهیت یا توحید طاعت و عبادت به سه بخش تقسیم شده ای به خاطر ازی است که ما و شما وقتی گفتیم که توحید الوهیت به معنای طاعت و عبادت است انال امی طاعت و عبادت خود ازمی طاعت و عبادت سی دسته تقسیم میشه که یک بخش ازی عبادت است که ای عبادت های قلبی هست یعنی قلبا ما چه قسم عبادت میکنیم؟ متوجه باشین که توحید علوهیت یا توحید طاعت و عبادت ایره توحید عملی میگن. عملی میگن ای که انسان عقیده داره عقیده داره که الله جل Duhuhu ذات واحد است الله جل Duhuhu را باید عبادت بکنیم و باید طاعت شو. پس همی که الله جل Duhuhu را عبادت بکنیم ایاکن عبدو و ایاکن استعین و اطیع الله است الله جل ان الحکم انی الحکم衣لالله حکم نیست مگر با الله جل Duhuhu پس انال امی همی طاعت الله جل Duhuhu و عبادت الله جل جله، اینمی کلش به شکل عملی انجام داده میشه. از این خاطر توحید الوهیت، توحید طاعت و عبادت یا توحید عملی میگن. که عملاً یک مسلمان این توحید باید در 24 ساعت زندگی خود تطبیق بکنه. ایناله که ما عمل میکنیم سه قسم عمل میکنیم به توحید. سه قسم عمل میشه. یکی اعمال تعلق میگره به قلب انسان. قلب انسان هم. در طاعت و عبادت الله جل جالو هست این تعلق میگره این طاعت ها و عبادت‌ها ها به قلب انسان به فکر انسان به اندیشه انسان به داخل انسان که ما مثلا به چی،, چی،, چی،, چی چیز عقیده داریم و چه قسم امو عقیده خودا عملا می‌کنیم. میکنیم یکی دوم قسم ازی توحید توحید چی است؟ توحید در عبادتهای بدنی هست عبادتهای بدنی است پس آنچه که مربوط به قلب میشه را عبادتهای قلبی میگن و قسم دومش عبادتهای بدنی هست عبادتهای بدنی چیست؟ است عبادتهای بدنی است که مثلا ما با چشم خود با چشم خود الله جل جلهو را عبادت می و اطاعت می کنیم چه قسم معناهزی چی است مانوی است که اگر ما چشم خود مطابق قرآن و سنت به شکل مثبت استعمال بکنیم اینجا چشم ما عبادت الله جل جاله رو کرده و اگر این منفی استعمال بکنیم مخالف امر الله جل جل اینجا چشم ما در اطاعت الله جل جل ها بالله نبوده و در گناه هستیم پس گوش ما باید در عبادت الله جل جل باشه دست ما در عبادت الله جل جلو باشه پای ما در عبادت الله جل جلوو باشه سر ما در عبادت الله جل جلو باشه تمام اعضای بدن ما مطابق عوامر الله جل جلوهو حرکت بکنه و ایره های بدنی میگن عبادت بدنی چی هست رکو یک عبادت بدنی هست سوال میشه عبادت های بدنی چیست های بدنی است که توسط اعضای بدن صورت میگیره و او را اسلام عبادت دانسته و در مقابل الله جله جلاله انجام داده میشه این را عبادت های بدنی میگن عبادات های بدنی, بدنی، رکو عبادت بدنی هست ما توسط اعضای بدن خود رکو میکنیم و به زبان خود تسبیحات میگیم سبحان ربی العظیم پس رکو کردن یک عبادت است و این عبادت باید برکی و به الله جل جلاله جل جل شوه ایناله رکو عبادت شد تخصیص اینمی رکو به الله جل جلاله مربوط میشه به توحید الوهیت عبادت بدنی شد که این عبادت بدنی باید خواست بکی با شد ایاکن عبدو ای ایاکن ارکع پروردگاه را خاص به تو رکو میکنیم سجده عبادت بدنی هست سجده عبادت بدنی هست وقتی که ما پیشانی خدا در زمین میگذاریم، و بهترین جای بدن خدا در زمین میگذاریم. و خود ذلیل میسازیم در مقابل کی باید بسازیم؟ در مقابل یک مخلوق یا در مقابل خالق توحید علوهیت بر ما عمر میکنه که ما چی کنیم؟ ایاک کن و ای ایا کن اسجدو پروردگار خواست را سجده میکنیم به این قسم مثلا نظر عبادت است نظر عبادت است شما کتاب های فقیره که از قرآن و سنت استنباد شده شما بخوانین میگه که نظر یا که عبادت است پس امین نظر که عبادت شد این نظره نام مخلوق بگیریم یا نام خالق بگیریم اگر بنامه توحید اولویت بر ما میکه نظرتانه بر خالق بگیرین خاطر که الله جل جلجلوه مستحق عبادت کیست لا الهه نیست هیچ مستحق عبادت الا الله بغیر از الله جل جلو پس نیست هیچ هیچکس مستحق نظر گرفتن بغیر از الله جل جلو نیست هیچکس مستحق سجده بغیر از الله جل جلو و نیست هیچ کسی مستحق رکوع بغیر از الله جل جلو بنا هر عبادتی که ما شما سر از بحث میکنیم که ای عبادت از شامل توحید الوهیت میشه اعضای بدن ما توسط اعضای بدن خود رکوع میکنیم توسط اعضای بدن سجده میکنیم توسط اعضای بدن مثلا زبح حیوان میکنیم توسط اعضای بدن خود نظر میگیریم و این نظر خدا تقسیم میکنیم می میکنیم می میتیم پس ای کله ازی چی است الی خاص برای کی می گیریم برای الله جل جلاله میگریم پس وقتی که عبادت فامیدیم که خاص مخصوص الله جل جلاله و او عقیده کردیم در توحید اللهیت که توحید عبادت عملی هست ما عملا امی عبادت خدا بر کی میکنیم عملا برای الله جل جلاله میکنیم اینالا اگر یک کسی اینمی عبادت هاره را غیر از الله جل با کسی دیگه میکنند در حقیقت انسان چی کرده مشکل از ای انسان این که عبادت به غیر الله کرده و توحید اولویت که عبادت عملی هست پس نظر قربانی شما یک حیوان میخواهین ذبحا بکنیم درست است ما یک حیوان میخواهیم ذبحا بکنیم با کی ذبح میکنیم کنیم و در مقابل کی کنیم ذبح حیوان مثل سجده وارد سجده برای کی میکنیم برای الله جل میکنیم در مقابل کی میکنیم در مقابل الله جل میکنیم رو به طرف کعبه میکنیم رو به خانه کعبه میکنیم رو به قبله میکنیم پس ما و شما وقتی که روی خود به طرف قبله کردیم الله جل جلو بر ما اجازه داده که رویتان باید به طرف امی خانه باشند لکن آیا ما میتونیم در مقابل درخ در سجده بکنیم نه میتونیم مثلا در مقابل حیوان سجده بکنیم نه ما میتونیم مثلا در مقابل یک پرنده سجده بکنیم نه ما میتونیم در مقابل یک انسان دیگه سجده بکنیم نه میتونیم در مقابل یک قبر سجده بکنیم نه چرا در مقابل بود سجده بکنیم نه چرا به خاطر از که کل از اینا عبادت ها هستن وقتی که اینا عبادت هستن عبادت باید مخصوص کی باشه مخصوص الله جل جلو باشه و وقتی که عبادت مخصوص الله جل جلاله شد از این خاطر ما اینمی عبادت خاص برای الله جل جلوه انجام میدیم و وقتی که بر الله جل جلاله انجام دادیم از این خاطر ای یا کنه عملا تطبیق کردیم پس قسم دوم قسم اول عبادت های قلبی شد و قسم دوم عبادت های بدنی شد و قسم سوم از عبادت های یا در عبادت ها در اطاعت الله جل جلاله این را عبادت های قانونی میگن انواع عبادت های قانونی چه قسم عبادت است عبادت هایی که ما مثلا در تشریع و تقنین اطاعت از کی می کنیم اطاعت از الله جل جلاله میکنیم. پس چی رو باید تطبیق بکنیم سر خود قانون الله جل جلاله رو باید سر خود تطبیق بکنیم از این خاطر اقسام عبادت اقسام توحید علوهیت، علما گفتن که سه قسم از مطابق قرآن و سنت که بعضی از عبادت ها تعلق به قلب میگیرن و بعضی از عبادت ها تعلق به اعضای بدن انسان میگیرن و بعضی از عبادت ها تعلق میگیرن به اطاعت در قوانین که این سه قسم از عبادت هاست که هر کدام از این باز مفصلن خدمت شما در هر درس خود تقدیم خاطر کردیم در برنامه هجهم آغاز دروس عزیز خدمتتان عرض کردیم که خود توحید الوهیت به سه بخش تقسیم می شد. یکی توحید الوهیت در عبادت های قلبی بود دومش عبادت های بدنی بود و سه هم در طاعت و تطبیق قانون الله جلجل جل و ما گفتیم که در درس که ما توحید الوحیت به این سه بخش تقسیم کردیم چرا؟ بخاطر خاطر ازی که توحید اولویت توحید چی میگفتن توحید عملی میگفتن یعنی یک انسان عملا ای توحید پیش می میبرد خب آل کیرا فهمیم آل میم سره از از درس که انال تقسیم میشه خود توحید در عبادتها که گفتیم سه بخش است قسم اول چی بود توحید در عبادت های قلبی بود ببینید دوستان عزیز وقتی که سر بخش اول زیگه میزنیم صحبت میکنیم سر توحید در عبادت های قلبی انال توحید در عبادت های قلبی چه قسم است؟ اول باید ما بفهمیم که قلب انسان مؤمن باید چه قسم جور شود؟ مطابق عقیده اسلامی ساخته شود وقتی که ما قلب خدا میسازیم اگر آیات قرآنی رو ما و شما به دقت بکنیم و ای آیات قرآنی رو بخوانیم و در باری آیات قرآن فکر بکنیم آیات قرآنی در باری قلب چی میگم؟ آیات قرآنی و احادیث نبوی صلی الله علیه و و سلام همیشه انسان مسلمان وظیفه میده که انسان مسلمان چی بکنه؟ این انسان مسلمان عقیده خوده چی کنه؟ از نگاه قلبی عقیده خوده جور بسازه. الله جل جلو چی میگم؟ الا من عاط الله به قلب سلیم قلب سلیم قلب سلیم کدام قلب است؟ قلب است که محبت الله جل در جلو او دا جای داشته باشه قلب است که دوستی الله جل, جل, جل در اونجا باشه قلب است که او محبت غیر الله نبام و اینمی است که اگر قلب انسان اصلاح شد و ان رابطه انسان با خالق یکتا مستحکم شد دیگه تمام اعضای بدن انسان بازو اصلاح میشه ببینید دوستان عزیز ما اگر قلبه بخوایم ببینیم این موبایل است. شما خوب دقیق سعی کنید یک موبایل است. این پارچه آهن است و این هم بتری از این موبایل است. بله اینا مثل دست و پای و گوش از این موبایل هستند. این اصل موبایل که ما شما بینیم که این موبایل در کار میاره و ارزش میته این کل ازی، ای ای ها و ای پارچه و ای پارچه کل از اینا یک طرف ولی اصل آنچه که کار میکنه چی هستم؟ در بین از این سیمکارد است و در بین از این سیمکارد چما سل کنید اینمی یک تو تکک چی هستم؟ اینی قسمت که زرد میزنه این اصلا چی هست؟ اینمی قلب از ای تشکیل میده و این قلب از این موبایل با کجا ارتباط داره این قلب وقتی که ما شما در موبایل گذاشتیم ای ارتباط داره با آسمان با سترلایت اگر این قلب از ای ارتباط داشت با سترلایت در آسمان در حقیقت ما شما باید ای بفهمیم که موبایل ما کار میکنه نورمال گرد زده میتونه دیگه تمام موبایل وظیفه خود انجام داده میتونه اگر رابطه از اینمی قلب از ای سیمکارد قطع شد به امراه سترلایت با این موبایل دیگه کار نمیته و وظیفه خود هم درست انجام داده نمیتونه. حالی که قلب عزیزی بر از عزی این موبایل بسیار با ارزش و مهم است. برای ما و شما مسلمان ها چه ارزش داره؟ این قسم قلب ما و شما هست که برای ما و شما بسیار ارزش داره. قلب ما هست که رابطه ما را با خالق یکتا منظم می‌سازد. و وقتی که قلب ما جور شد قلب ما جور شد باز دیگه اعضای بدن انسان چی میشه؟ دیگه اعضای بدن انسان جور میشه از این خاطر نبی کریم صلی الله علیه وسلم چی میگه؟ که در وجود انسان یک پارچه گوشت است مد غیره میگه اذا سالو حد، سالو حل اگر ای اصلاح شد همین قلب انسان همین پارچه, پارچه گوشتی که در وجود انسان هست که قلب انسان است اگر ای جور شد سال و حل جسد و کلو تمام اعضای بدن جور می باشند و اگر این فاسد شد تمام اعضای بدن فاسد می شه. از این خاطر تمام پیغمبران ها برای چی آمدن؟ برای از این آمدن که رابطه قلبی انسان با خالق یکتا مستحکم بسازه. با خالق یک تا مستحکم بسازه. اینال ای پیغمبر وقتی که آمدن که رابطه یک انسان مسلمان با خالق یکتا مستحکم بسازه. تا ای قلب مستقیما با خالق یکتای خود ارتباط داشته باشه و همیشه وقتی که مشکل داشت به طرف از رجوع بکنن این صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین اینه یقینا که صلاتی نماز من و نسکی و دیگر مناسک من و محیای و زندگی من و مماتی و مرگ من لله خاص برای الله جل جلوه رب العالمین که پروردگار عالمیان است اینال اگر کسی توانست که حقیقتا الله جل جلوه رابطه خودا با الله جل جلوه مستحکم بسازد و قلب خودا با الله جل جلوه مستحکم بسازد در حقیقت این انسان انسان درست است لاین ارتباطی است که یک طرف ازی و اعتصم بحبل الله جميعا ایرسمان الهی است که یک طرفش قلب بنده است و یک طرفش بدست مخلوق است و یک طرفش بدست خالق است قران عزیزمشان منعه الله به قلب سلیم اینال شیطان چی میکنه شیطان یک کار اساسی میکنه و است که رابطه انسان و شیطان میگه که با خالقش قاطی بکنه وقتی که رابطه انسان با خالقش قطع کرد این انسان قلبش با خالق رابطش قطع شد تحت تاثیر شیطان رد باز شیطان میگه آلی در مشکلات و در های با ایواز یا الله یا ملائکه بگو برو ملائکه را عبادت بگو عظمت مخلوق در قلبش جای می عظمت شیطان در قلبش جای می عظمت یک مخلوق یک درخت یک سنگ یک پارچه یک قبر یک, یک ش... پس انال این مخلوق چی میشه پس این بیچاره میخیزه میره کجا میره میخیزه حرکت میکنه و میره سجده به غیر الله میکنه رکوع به غیر الله میکنه نظر به نام مخلوق میکنه قربانی بر مخلوق میکنه حیوان دست زیر پای یک مخلوق میکنه این کارایی کرد شیطان کرد از این خاطر دوستان عزیز خواهرای عزیز برادرای محترم متوجی باشید که قلب بسیار ارزش داره نبی کریم صلی الله علیه و سلم در حدیث شریف چی میگه حضرت نعمان ابن بشیر رضی الله تعالی عنه میگه که رسول الله صلی الله علیه و فرموده است که الا او مردم آگاه باشید الا آگاه باشید و این فی الجسد مدغه که در جسد شما یک پارچه گوشت است مدغه یک پارچه گوشت اذا حد صالح الجسد کلو اگر امی قلب اصلاح شد تمام اعضای بدن چی میشه؟ اصلاح میشه و اذا فسدت و اگر قلب فاسد شد فسد الجسد کلوه تمام جسد انسان فاسد میشه این مدقه پارچه چی است اله آقا باشی رسول الله سمگه القلب کی قلب انسان مسلمان است؟ این حال به اندازی سلامت قلب انسان اعضای بدن دیگه ما شما گفتیم در توحید عبادت قلب عضو بدن شد اصلاح قلب تمام اعضای بدن انسان را اصلاح می‌سازد وقتی که تو با خالقت بود و تو با خالقت بود در اینجا سجده برای خالق می‌کنی رکوع برای خالق می‌کنی اطاعت برای خالق می‌کنی عبادت برای خالق می‌کنی و به هیچ کس دیگه اطاعت و عبادت نمی‌کنی اینجا هست که الله جل جلاله چی میگه؟ خوب متوجه باشین. یوم لا ينفع مال ولا بنون یوم روزی که لا ينفع نفع نمیرسند مال مال مال, مال. نفع نمیرسند. کدوم روز روز قیامت است؟ در روز قیامت که هر قدر مال مال بر تو نفع نمیرسند. ولا بنون و میرسن؟ نفنه میرسنن تو چقدر سایو تلاش میکنه انسان که خوب مال داشته باشه و خوب ها داشته باشه لکن یه حیث قرآن چی میگه؟ انسان اوشیار کی هست؟ کار میکنه که هم در دنیا دردش بخوره و هم در آخرت بدردش بخوره خب حال ما کارهای دنیا را کردیم برای آخرت چی باید بکنیم؟ چی کار بکنیم که سعادت دنیا و آخرت نصیب ما شما؟ از این خاطر است که میگه یوم لا ینفع اومال ولا بنون الا من الله به قلب سلیم مگر کسی که به الله آمد با قلب سالم خب علمای اسلام و مفسرین کرام قلب سلیم کدام قلب دانستن امام تبری رحمت الله علیه در تفسیرش اقوال علما را نقل میکنه چی میگه میگم مجاهد میگوید، الا من ات الله با قلب سالم، که با قلب سالم به چیز قلبی که از شرک سالم مانده باشه، و قلب سالم است. چطور از شرک؟ معنی ما گفتیم که ای سیمکارت ارتباط داشت با سطح لایت. قلب تو که تو مسلمان هستی، با کجا ارتباط داشته باشه؟ با خالقت در طاعت خالق و در عبادت خالق کسی دگیره شریک نسازی در طاعت خالق و در عبادت خالق کس شریک نسازی اگر سجده به غیر الله کردی تو سالم نیست قلبه که گمراه هست و سالم نیست و مرض داره چیز مرضش محبت غیر الله هست وقتی که قلب به محبت غیر الله مصروف شد باز تو میگه که پیشانیت بان برای غیر الله پس این معلوم میشه که قلب فاسد است شما تمام زندگی اتانا ببینین که کلش تعلق میگیره به چی؟ به قلب ببینین اگه قلبی که شک داشت قطاده چی میگه؟ میگه قلبی که از شرک سالم مانده باشه مجاهد میگه قلب سلیم قلبی که در شک نباشه قطاده میگه قلبی که از شرک سالم مانده باشه ابن زید چی میگه؟ قلبی که از شرک سالم باشد ولی در قسمت گناه هیچ کسی از گناه سالم مانده نمیتانه. پس حتما انسان چه خوب میگه سالم ابن زید میگه که اگر قلبت از شرک نگاه کردی اعضای بدن انسان حتما روزی از روزا مواجه با گناه میشه. دست انسان گناه میکنه چشم انسان گناه میکنه گوش انسان گناه میکنه. لیکن چیزی که سالم میمانه قلب است و او قلب است که در او شرک جای نداشته باشه. اگر در قلب مرز مداخله کرد و قلب فاسد کرد باز ازای بدن انسان کلش خراب میشه و اگر دیگه ازای بدن باز هم بکنه باز هم عبادت از قبول نمیشه لان اشرکته لهیحبطن عملک اگر شرک اوردی باز اعمال تو چی میشه از بین میره و نابود میشه اعمال انسان دهاک چی میگه میگه قلب سلیم چی میگه؟ قلب که خالص باشه. قلبی که در آن فقط اعصامت خالق متعال جای داشته باشه. این را قلب چی میگن؟ قلب سلیم میگن الله معلوموسی چی میگه در تفسیرش میگه به قلب سلیم قلبی که از تمام انواع شرک سالم مانده باشه. شرک در طاعت، شرک در عبادت، کسر در طاعت الله شریک نسازی، در عبادت الله شریک نسازی، در قانون الله کسر شریک نسازی، در سجده کستر شریک نداسي تمام عزیزم تفسیر صاحب تفسیر راضی چی میگن؟ میگه قلب سلیم قلبی که از شرک سالم مانده باشه برادرها ببینین که چقدر شرک خطرناک است و شرک چی هست که ما سجده به غیر الله بکنیم دست دعا به غیر الله بلند بکنیم دعا عبادت است به غیر الله دست دعا بلند شون به غیر الله سجده شون در مقابل مخلوق ایوان ذبح شون متاسفانه بعضی از مسلمان ها داخل می امی این در مقابل برای مخلوق حیوان زیر پای مخلوق ذبح حامی کنند زیر پای عروس ذبح نمیکنند، در زیر پای مرده در قبر حیوانا ذبح نمیکنند، شرک و شاحد دم ندارد یعنی که انسان به غیر الله یک عبادت انجام داد او مخلوق با الله جل جاله در عبادتش شریک ساخت صاحب تفسیر نظم و درار میگه به قلب سلیم یعنی قلبی که از مرض سالم باشه که او را از فطرت اولیش تغییر نداد و اسلام است خود قلب سالم ای است که انسان با فطرت اولی خود باشه و صاحب تفسیر فیضلال لقرآآن چه میگه به قلب سلیم در روز قیامت میگه ارزش دیگری به جز ارزش اخلاص وجود ندارد اینکه قلب را خاص به الله جل جلوه بگردانی از هر شک از هر مرض از هر غرض پاکش کنی و قلب را از شهوات و انحرافات صاف سازی و او را از تعلق بغیر الله خالی بسازی این چی میگن قلب سلیم میگن الله جل جل هو برای تمام ما شما قلب سلیم نصیب بکنه تا برنامه بعدی شما رو به ربیز الجلال رب مصبارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات